بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوقف كتاب وقف وإذا وقف الرجل المالك أرضا أو ما ينتفع به ما باقاه من حيوان وغيره على أصل موجود وفرء باق كالفقراء والمساكين إن عمه والمساكين إن عمه أو على زيد وأولاده ما تناسلوا ثم على الفقراء والمساكين إن خص صح الوقف وظال عنه ملك الواقف وإن لم يخرجه عن يده وأجرى على سبله في عمومه وخصوصه وهو على ما يشترته من التساوي والتفضيل والتشريك والترتيب مفرمات زمانك واقف كرد شخص مالك زمینی رو یا آن چیزی رو که ازش نفع برده میشه همراه با باقی موندنش یعنی خودش باقی مونده بشه و ازش نفعی برده بشه چیزی نباشه که تو ازش نفع ببری خودش بشه تمام بشه پس زمانی که وقف کرد شخص مالک زمین رو یا هران چی رو که نفع برده بشه ازش همراه با باقی موندنش چه حیوان باشه و غیری چی چیزی دیگه باشه اون وقف کرد علا اصل موجوده وقفش کرد بر اصلی که موجوده بر اون کسی که وقفش میکنه اون چی باشه موجود باشه اون چیزی که وقفش میکنه اون چیز چی باشه موجود باشه معدوم نباشه مثلا نمیتونه بیاد وقف بکنه بر فرزندی که به دنیا خواهد اومد بر فرزندی که پس بر اصلی موجود و فرعی که باقی بمونه معصال میاره مانند فقرا و مساکی ان عم اگر غیر معین بود عام بود یا بر زید و فرزندانش تا زمانی که زوریه داشته باشه نسل داشته باشه سپس بعد از اونها بر فقره و مساکین چون دیگه با... قط نشه چون قط فرع باقی باشه این خاص اگر از نوع خاص بود اگر از نوع معین بود چون موقوف علیه یا معین یا غیره فقره و مساکین که دیگه غیر معینند ولی موقعی گفت برزه دو اولادش این دیگه چی شد؟ با معین شد با. صحح الوقف صحیح هست وقف این جواب اضایه این جواب چیه؟ زمانی که وقف کرد برون شرایلتیک توزیداد میگه صح الوقف وقف چیه؟ پس زمانی که شخص اومد زمینی یا چیزی دیگه که ازش نفت برده میشه با باقی موندنش شخص اومد وقفش کرد بر اصلی موجود بر اصلی چی؟ و فرق که قطع نشه باقی بمونه. اون موقع وقف صحیحه چه ماین باشه چه غیره ماین یعنی بر جهات باشه جهات فقره و مساکین و این چیزا وقف صحیحه وزال عنه ملک الواقف و ملکیت الواقف از بین میره البته این اختلافیه که آیا اون اصل موجود باشه یا نباشه مثلا ذهب الحنفیتو الى انه یسح الوقف على معلوم او معدوم مسلم او ذمی او مجوسی على الصحیح حنفیه میگن صحیح وقف بر معلوم و معدوم مسلمان و ذمی یا مجوسی طبق قول صحیح شون. مالکیتی مالکیه میگه؟ میگه صحیح وقف بر اهل تملک اونایی که میتونن مالک باشن برابر است که موجود باشه یا نه بعدن موجود بشه مانند جینین ولی شوافق بر جنین وقف و جایز چون اصلش معدود موجود نیست چون موجود و فرع باقی بل یکی از شرایط وقف در مظر شوافی تعبیده بر کسی وقف بکنه که منقرز نمیشه بسی اینجا برزید کرد و بر, بر فرزندانش تا زمانی که فرزند داشته باشند، ثم علل فقرا. سپس اگر نداشته باشه، بر چی میره؟ بر فقرا میره بالا. پس صحیح هست وقف و ملکیت واقف از بین میره و زال عنهم ملک الواقف و ملکیت واقف از اون وقف از بین میره. و اینلم يخرج ونياده اگر چکم از دستش خارجش نکنه. ولی ملکیت از دستش رفته و جاری اجاری میشه بر همون راهایی که وقفش کرده چی در عموم بوده چی در خصوص چی بر معین بوده چی بر غیره وحو و مسئله دیگر وقف اینه وحو علام مایشتری تو و طبق شرطش تصرف میشه در وقف من, من التصاوی اگر گفته به شکل مساوی مثلا این وقف بر فقرای بر فرزندان فقیر من آ یا بر فقره و مساکینی که عالم باشند چی بر فقررا و به شکل مساوی به شکل چی ؟ یع نه اگر گفت این مال وقف بر فقره و مساکین ولی دو دوبراره مثلا میگم آ مناس من ببرند اون موقع به شکل تفضیل میشه. پس و, و هو ال معش و شرط و وقفش طبق اونچه که شرط کرده؟ جاری میشه من التساوی اگر تساوی کرده بود خب به شکل تصاوی و تفضیل اگر تفضیل کرده بود تفضیل مثلا گفته بود این بر فرزندان من سپس بر فقرا بر فرزندان من ولی مردها دو برابره مثلا زن ها اینجا دیگه تفضیل میشه چی میشه چون اینجا خود شرط تفضیل رو کرده یا تشریک یا ترتیب یعنی ابتدا بر اینها بعدن بر اونها طبق شرطی که خلاصه واقف وقف کننده کرده پس بر همون شرطی که واقف کرده جاری میشه ولا یسح الوقف على اصل معدوم و على فرق منقطع صحیح نیست وقف بر اصل معدوم مانند جنین و همچنین بر فرقی که منقطع باشه و الوقف على المساجد والقراطر والمصانع اذا جعل منتهاه اند انقطاعی صوبله وقف جائزه بر مساجد دیگه بر چی پل ها و مسائل عموم وقف جائزه بر مساجد و پل ها و مسانه مسن یک چیز درست میکنم زمانی که قرار داد منتهای اون رو این ان قطع سبوله زمانی که این اینا خودشون قطع شدن براش یک انتهایی رو چکار کرد تعین کرد یعنی تا منقطع نشه وقف تا اون وقف منقطع ولا سهح الوقف على البی والکنائسی ولا على المعاصي والمحظورات محلوورات صیح نیست وقف البی ب نیستیم ب که معامله میشه همون بیایه که در خورآ اومده مساجد ها و عبادتگاه غیر مسلمینه پس صحیح نیست ووق بر عبادتگاه های غیر مسلمین و بر گناه و بر چیزای حرام. لهدمت سوامئن وبيعو إن بياعس إن جاس بي كمان ابتداج من بي خون دمنا بقلي. ويصح على فقراء اليهود والنصارى صحيحة سواقف بر فقيران يهود نصرانا. نصارى نصارى البته الزمان ك حربي ناباشاند. ولا يصح على المرتدين بي وقف صحيح نس إنسان هاي مرتد ولا أن يقف على نفسه والصحيح نسك برخودش وقف بكونه شيء امورك مال خودشه ديگه چی معنا داره که بیاد برخودش بكونه بکنه باله واذا سبل داره مسجدا كان فيه كأحد أهله میگه زمانی که وقف کرد خونه رو به مسجد خودش مانند یکی از اون اهل مسجد میگرده یعنی مثل بقیه چطور میتونن برن توش نماز بخونن فقط اجازه داره بر توش نماز بخونه دیگه مال خودش مثل بقیه هست آه؟ با عبارت ساده زمانی که سبل داره مسجدن وقف کرد خونهش رو به مسجد کان فیه که احدی اهل هست درون مسجد درون خونه خونهی که الان تبدیلی به چه شده مسجد شده مانند یکی از بقیه مردم مانند یکی از بقی ولا يصح الوقف حتى يقول وقفت او حبست او صبلت او تصدقت صدقه محرمه او مؤبده ولا يصير بالنيه وقفا والصحيح نیست وقف مگر اینکه انك الزماني كبيگوت وقف كردم به زبان عربي يا ترجمه اينارو در زبان خودش بگه پس صحيح نیست وقف مگر انك اگر عرب بود بگه که وقف كردم او حبستو اينها همشون يک معنی او صبلت او تصدقت صدقه محرمه صدقی که بر اونها حرامش کردم. یعنی ازش نفع ببرن ولی مال کسی او معبدتن صدقی عبادی ولا یسیرو به نیت وقفن با صرف نیت کردن تبدیل به وقف نمیشه میگه باید با زبان اینا رو بگه اون الفاظی لو که دلالت بر وقف میکنن در هر لحجه اونو بگه تا اون تبدیل به بشه به وقف بشه وگرنه با نیت خالی وقف نمیشه کتاب الهبات کتاب هبه ها هبات جمع هبه است یعنی بخشش ها ولا تتم الهبه الا بالقبض هبه کامل نمیشه تموم نمیشه مگر با قبض کردن بعد و والقبول بعد بخشیدن و بعد از قبول کردن طرف اونو بخشید شما قبول کردی هبه کامل نشد تا اونو تحویل نگرفتی طرف میتونه بر بگرده الا الهدایه مگر در هدیه در هدیه قرض شرط نیست فالقبضو فیها باغلون و الرضا بها قبول. قرض در هدیه همون باغذل کردن همون که بخشید دیگه قبضه و الرضا بها قبول و رضایت هم رضایت به هدیه خودش قبوله بله خب در پاورغه بیان یک چیزای قشنگی رو توضیح داده میگه هبه در, در شرع عقدیست قرار است که موضوع اون مالک کردن انسان مالش رو به دیگری انسانی بیاد مالش رو کسی دیگر رو مالک مالش بکنه بدون عوض من مال خودم رو به شما بدم بدون عوض اینو میگن هبه فرقش با آریه اینه که آریه اینه که شخص میاد مالش رو برای دیگه مباح میکنه تا از اون نف ببره بدون این که مالکش بکنه من فرقونو میدم به شما که شما کار رو انجام بدی اما شما رو مالکش نمیکنم خب میگه زمانی که مالک کردن تملیک بعد از موت بود طرف شما رو یه چیزی داد ولی بعد از مرگش این میشه وصیت و زمانی که این تملیک چیزی رو به شما داد شما رو مالک کرد در مقابل عوض بود این میشه به اصطلاحات اومد توضیح داد نه؟ خب پس حب زمانی کامل میشه که طرف اون موحوب لح اینو قبض بکنه تحویلش بگیره تحویلش نگرفته بود مالش نمیشه و یعمر الموهوبله بالمکافات علیها بالمکافات علیها بقدری قیمتی هم میگه دستور داده میشه البته این اختلافی وجود داره میگه این مذهب امام ابو حنیفه و امام شافعی بود اما امام مالک و امام احمد و اهل ظاهر میگن هبه صحیح هست بدون این قبض در شرط باشه بدون این که شاق قبض کردن میگه اگر واهب یا موهوب له نظریه این گروه دوم فوت کردن قبل از قبض هبه هبه باطل نمیشه این گروه دوم بود که آورده در پاورقی خب بریم جلوتر میگه و ليسه للواهبی الرجوعو فیها الا للوالدی فیما واهبا لولدی فله الرجوعو فی اذا آ بله میگه دس و یوامر الموهبله بال مقافحتی علیه بقدر قیمتیا فما زاد داده داسورد دادمش که جبران مکنه بقدر قیمت اونه یا فراتر از اونو. البته بعدا توضیح میده میگی این امر امر مندوب هست نه وجوب خب فرقی که بین هدیه و هبه میارن میگن در هدیه شخص اونو به خاطر دل دست آوردن و گرامی داشت میده معموله و لا تصیح و هبه تو مالم یخلق و صحیح نیست هبه آنچه که دروس درست نشده ولا لا هبه المجهول والحرام و الحرام و کردن چیزی که مشخصش نمیکنه طرف یکی از این چیزا به شما هبه است باید مشخص بشه واسه به کردن چیز مجهول و چیز حرام درست نیست و ظرف هدیه تی هدیه مردود ان میگه ظرف هدیه بازگردانده میشه به صاحبش اگر ارزش داشت اگر چیز خوبی بود ولی لازم هردو اما اگر چیز کوچک و کمی بود لازم نیست بر موهوبه که برونی که هدیه بش داده شده بر اون کسی که هبه شده اونو باز به